قاتل اونیه اول شعبان 645 پنج شنبه گفتم با من نیایید گفتم اگر مشتری ها توی کارم دخالت بکنند اعصابم به هم میریزد از من این کارو از آنها اصرار گفتند تو این درویش را نمیشناسی. کارهای عجیب و غریبی می کند. جادو و جنبل می کند. باید خودمان به چشم خودمان ببینیم که مرده وگرنه معامله فسخ میشود. شود. آخر سر رضایت دادم، گفتم، خیلی خوب، اما مبادا قبل از تمام شدن کارم آن طرفها آفتابی بشوید. سرشان را تکان دادم سه نفر بودند. دو نفرشان دفعه قبل هم آمده بودند. اما سومی هم تا آنجا که از صدایش معلوم بود به اندازه آن دو نفر دیگر جوان و مسترب بود. همگی صورتشان را با پارچه سیاه پوشانده بودند. انگار برایم مهم بود که بدانم کی هستم. نیم شب راه خانه مولوی را در پیش گرفتم. به آنجا که رسیدم از بالای دیوار آجری پریدم توی حیات و پشت بوته‌ها قایم شدم. مشتری ها به هم گفته بودند شمس عادت دارد هر شب پیش از وضوع گرفتن بیاید به حیات و گوشهی بنشیند و برود توی فکر. تنها کاری که باید می کردم انتظار کشیدن بود. یک دفعه بادی وزید که نگو و نپرس. کم مانده بود شاخ در بیاورم. هیچ وقت این موقع سال همچو سوزی نمی آمد. شمشیری که توی دستم بود یواش یواش سنگینتر تر می شود. مرجانهای روی قبضه این یخ سرد شد یک خنجر هم محض احتیاط پر شالم گذاشته بودم حاله کمرنگی دور ماه را گرفته بود از دور صدای زوزه حیوانهای شبرو می چه صدای شوم و اسرارآمیزی بود آرامشم را به هم زد در یک آن دوچار حسی عجیب شدم شاید هم بهتر بود همان لحظه همه چیز را رها می کردم و از آن جای بدشگون دور می شدم. اما این کار را نکردم. زمان زیادی گذشت. پلکایم سنگین شد. همین جور ناخواسته خمیازه می کشیدم. شدت باد که بیشتر شد فکرهایی یکی از یکی بدتر حجوم آورد به ذهنم صورت آدمهایی که کشته بودم دایره وار بالای سرم می چرخیدند. مثل کرکسهایی که بالای لاشه می چرخند. نفهمیدم چم شده مردی بودم که به خونسردی معروف بود زود دست پاچه شدم. به علاوه از آنهایی نبودم که دوست دارند به گذشته فکر بکنند برای اینکه حالم سر جایش بیاید کمی سوت زدم وقتی دیدم این هم فایده ندارد چشمهایم را به در پشتی خانه دوختم و زیر لب گفتم زود باش شمس خیلی معطلم کردی ده بیا بیرون دیگر همان موقع یک دفعه باران شروع کرد به باریدن انگار باران خواسته بودم آن هم چه بارانی از آسمان سیل می آمد. چنان بارانی بارید که در یک چشم به هم زدن تا زانو توی گل ماندم از سر تا پا خیص شده بودم گفتم لعنت صد بار لعنت زمان نمی رگبار قطع نمی شد. دیگر کم مانده بود بگذارم و بروم که یک دفعه صدای ترق و تروق شنیدم. یکی توی حیاط بود، پای دیوار قایم شدم و نگاه کردم، خودش بود، توی دستش یک شم گرفته بود، مستقیم به طرفم آمد. چند قدم مانده بود به من ایستاد. شمس پرسید، شب قشنگیست، مگر نه؟ این مرد با خودش حرف میزد یا کسی پیشش بود. قاطی کرده بودم، نکند با من حرف میزد. یعنی میدانست من آنجا هستم؟ یک دفعه متوجه چیزی شدم، که خیلی حیرت زده کرد توی آن باد شدید زیر آن رگبار باران چطور میشد شمع شم توی دستش روشن بمانند تیره پشتم لرزید روایت هایی که در مورد شمس می گفتند یادم آمد می گفتند توی سهر جادو ماهر است راستش این مزخرفات را باور نمی کردم. اما وقتی دیدم شمس زیر باد و باران با شمعی روشن در دست ایستاده، زانوهایم سست شد. شمس گفت سالها قبل در تبریز استادی داشتم به اسم ابو انسان عرشمندی بود. یادم داد که هر چیزی زمانی دارد این هم یکی از آخرین قواعد است درباره کدام قائده ها حرف میزد. زد نکند فکر میکرد میتواند با حرفهای بی معنی و نامفهوم بترساندم باید تصمیم میگرفت یا باید فوری از پای دیوار می پریدم جلو و حمله می کردم یا آنکه همانجا مخفی می شدم و منتظر لحظه مناسب میماندم اما شمس انگار قصد نداشت پشتش را به من بکند از طرف دیگر اگر میدانست که من آنجایم دیگر برای چه باید قایم می شدم؟ هنوز تصمیم خودم را نگرفته بودم که یک دفعه چند سیاهی پای دیوار باغ پیدایشان شد. شمردم، شش نفر بودند. لابد جوانها که دیده بودند تا آن موقع درویش را نکشته ام رفته بودند نیروی کمکی آورده بودند. شمس هم طوری که انگار متوجه چیزی نشده باشد به حرف زدن ادامه داد آعده سی و هفتم ساعتی دقیق تر از ساعت خدا نیست آنقدر دقیق است که در سایه همه چیز سر موقعش اتفاق می افتد. نه یک ثانیه زودتر نه یک ثانیه دیرتر برای هر انسانی یک زمان عاشق شدن هست، یک زمان مردن. آن لحظه بود که فهمیدم درویش از اول با من صحبت می میدانست آنجایم. فکر کنم پیش از آمدن به حیات هم میدانسته. دلم شروع کرد به تاب تاب زدن. بیشتر از این. مخفی شدنم بیمعنی بود پا شدم آمدم وسط رو در روی هم ایستادی قاتل و مقتول با وجود ترسناک بودن وضعیت انگار نوعی آرامش در هوا موج میزد. باران همانطور که یک دفعه شروع شده بود یک دفعه هم قطع شد همه جا و همه چیز در سکوت فرو رفت. شمشیرم را کشیدم و با تمام قوت حمله کردم. درویش ضربم را چنان سریع و مطمئن رد کرد که از تعجب خشکم زد. بار دیگر حمله کردم. اما همان صحنه تکرار شد. یک دفعه از توی تاریکی سر و صدایی بلند شد پیش از آن که بفهمم چه خبر شده ششمردی که پای دیوار قایم شده بودند چماق به دست حمله کردند معلوم نبود کی به کیست همه توی سر و کله هم می زدند همینجور چماق بود که بالا میرفت و پایین میآمد. و توی سر این آن می‌خورد. نفهمیدم کی دارد کی را می زند. کنار ایستادم. هیچ وقت در جنایتی که قرار بود مرتکب بشوم، حالت تماشاچی پیدا نکرده بودم. از دست جوانها آنقدر عصبانی بودم که کم مانده بود شمس را ول کنم و به آنها حمله کنم. اما کمی بعد یکی از جوانها شروع کرد به داد زدن کمک چل شغال به دادمان برس همهمان را میکشد همان موقع تصمیمی گرفتم با خودم گفتم اول درویش را میکشم بعد به حساب جوانها میرسم پریدم جلو جوانها با دیدن من دلو جرعت پیدا کردم و دوباره حمله را شروع کردند شش نفری با هم شمس را گرفتیم و زمینش زدیم خنجر را درآوردم و یک ضرب توی قلبش فرو کردم از دهانش تنها یک فریاد درآمد تیز و وحشی شاید هم همه جای شهر شنیده شد فریادش لبهایش آخرین دم را فرو داد و دیگر تکان نخورد. همگی با هم جسدش را بلند کردیم. از تعجب دهانمان باز ماند. خیلی سبک بود. سبک مثل شاخی خوشگیده. مثل میوهی که آبش گرفته شده. بعد توی چاه انداختیمش. یک قدم عقب رفتیم و منتظر ماندیم صدای در آب افتادنش را بشنویم. اما صدایی نیامد. یکی از جوانها گفت چی شد؟ نکند این یارو توی آب نیافتاد. یکی دیگر گفت مگر همچو چیزی می شود. چطور ممکن است توی آب نیافتاده باشد؟ نگاه من را از همدیگر دیگر دزدیدی. همه اعصابشان به هم ریخته بود. یکی حد سیزد و گفت شاید روی دیواره شاه گیره ای چیزی بوده و جسد به آن گیر کرده. آقلانه ترین توضیح همین بود. وانمود کردیم که قبول کردیم، اما همگی خوب میدانستیم. این سکوت را با گیره و چنگک و این جور چیزها نمیتوان توجیه کرد. آنجا در سکوت چقدر منتظر ماندیم نمیدانم. یواش یواش آسمان از سمت مشرق به سرخی میزد و سحر نزدیک میشد. کمی بعد در پشتی خانه باز شد و مردی بیرون آمد. فوری شناختمش، مولانا بود. با نگرانی صدا زد، کجایی جان من؟ شمس عزیز تر از جانم، نکند آنجایی. جوانها دست و پایشان را گم کردند. بعد یکی یکی از دیوار باغ بالا رفتند و به آن طرف دیوار پریدند. میدانستم یک ثانیه دیگر نباید آنجا معطل بشوم اما نتوانستم جلو خودم را بگیرم. برگشتم و نگاه کردم. و آن موقع دیدم مولانا مستقیم به طرف چاه به راه افتاد. سر چاه که رسید خم شد و مدتی همانطور ما. لابد چشمهایش داشت به تاریکی عادت میکرد. بعد یک دفعه انگار چیزی دید به عقب برگشت. زانو زد و فریاد کشید. کشتندش. شمس را کشتند. از دیوار پریدم. آن که بتوانم خنجری را بردارم که خون درویش رویش بود، به سرعت شروع کردم به دویدن از کجا می حتی با گذشت سالها باز هم نمی‌توانم بیایستم و مجبور می مدام از خاطره آن شب فرار کنم